این باغ بسیار زیباست. آرامگاه کمالالملک هم دیدنی است. میدانی کمالالملک که بود؟ فکر می‌کنم نقاش بود. درست است؟ بله. او از بهترین نقاشان ایران بود. حدود هشتاد سال پیش درگذشت. او اهل نیشابور بود؟ نه. کمالالملک کاشانی بود. در نوجوانی به تهران و سپس از آنجا به اروپا رفت. برای آموزش نقاشی به اروپا رفت. بله، بعد به ایران آمد و مدیر یک مدرسه هنری شد. چرا آرامگاهش در نیشابور است؟ چون در سن پیری به نیشابور آمد و تا پایان عمر در آنجا زندگی کرد. تابلوهایش هم در نشابور است؟ نه، تابلوهای او در موزه های مختلف ایران و کشورهای خارجی است،